مصنوی معنوی مولوی برنامه یکصد و ششم انابت آن طالب گنج به حق تعالی بعد از طلب بسیار و عجز و استرار که ای ولی الازهار تو کن این نهان را آشکار گفت آن درویش ایدان دانای ای راز از پای این گنج کردم یا و تاز دیوه هرس و آز و مستعجل تگی نی تعانی جست و نی آهستگی من زدیگ لقمه نندوختم، کف کردم، دهان را سوختم. خود نگفتم، چون در این ناموقنم، زانگره زن این گره را حل کنم. قول حق را هم زهق تفسیر جو، هین مگو از گمان ای سخت رو. آن گریه کو زد، همو بکشایدش، و انداخت، او بربایدش. گرچه آسانت نمود آنسان سخن کی بود آسان رموز منلدن؟ گفت، رب توبه کردم زین شتاب، چون تو در بستی، تو کن هم فتح باب، بر سر خرقه شدن بار دگر، در دعا کردن بودم هم به هنر. کو هنر، کو من، کجا دل مستوی؟ این همه عکس تو است و خود تویی هر شب تدبیر و فرهنگم بخواب، همچو کشتی غرقه میگردد زعاب، خود نه من میمانم و نه آن هنر تن چمردار فتاده بی خبر تا سحر جمله شب آن شاه اولا خود همه گوید الستی و بلا کو بلا گو جمله را سیلاب برد یا نهنگ خورد کل را کرد و مرد صبح دم چون تیغ گوهردار خواد از نیام ظلمت شب برکشد آفتاب شرق شب را تی کند این نهنگ آن خرده را قی کند رست چون یونس زمیدی آن نهنگ منتشر گردیم اندر بو و رنگ خلق چون یونس مسبه آمدند کندران ظلمات پر راحت شدند هر یکی گوید به هنگام سحر چون ز بتن هوت شب آید بدر کیکریمی که در آن لیل وحش گنج رحمت بنهی و چندین چشش چشم تیز و گوش تازه تن سباک از شب همچون نهنگ زلها باک از مقامات وحشرو رو زین سپس هیچ نگریزی ما با چون تکست موسی آن را نار دید و نور بود زنگی دیدم شب را حور بود بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس تا نپوشد بهر را خاشاک و خص ساهران را چشم چون رست از اما کفزنان بودند به این دست و پا چشم بند خلق جز اسباب نیست هر که لرزد سبب ز اصحاب نیست لیک حق اصحابنا اصحاب را درگشاد و برد تا صدر سرا با کفش نامستحق و مستحق معتقان رحمتند از بند رق در آدم ما مستحقان کی بودیم که بر این جان و بر این دانش زدیم ای کرده یار هر اغیار را وی بداده خلعت گل خار را خاک ما را سانین پالیز کن هیچ نی را بار دیگر چیز کن این دعا تو امر کردی زبتداد ورنه خاک را چه زهره این بودا چون دعامان امر کردی ای عجاب این دعای خیش را کن مستجاب شب شکسته کشتی فهم و حواس نه امید مانده نه خوف و نه یاس. برده در دریای رحمت ایزدم، تازه چه فن پر کند بفرستدم. آن یکی را کرده پر نور جلال، دگر را کرده پر وهم و خیال. گربخیشم هیچ رأی و فن بوده، رأی و تدبیرم به حکم من بوده، شب نرفتی هوش به فرمان من زیر دام من بوده مرغان من بودمیگ آگه ز منزلهای جان وقت خواب و بی و امتحان چون کفم زین حل و عقد او تهیست ای عجب این معجبی من ز کیست؟ دیده را نادیده خود انگاشتم، باز زنبیل دعا برداشتم. چون الف چیز ندارم ای کریم، جزدل دل تنگ تر از چشم میم. این الف وین میم ام بود ماست، میم ام تنگ است، الف زو نرگداست. آن الف چیزی ندارد غافلی است میم دلتنگ آن زمان عاقلی است در زمان بیهوشی خود هیچ من در زمان هوش اندر پیچ من هیچ دیگر بر هیچ منه. نام دولت بر پیچ منه خود ندارم هیچ بهسازد مرا، که زوهم دارم است این صد آنا. در ندارم هم تو داراییم کن، رنج دیدم راحت افزاییم کن. هم در آب دیده اریان بیستم بردر تو چون که دیده نیستم. آبی دیده بنده بی دیده را سبزه بخش و نبات زینچرا نمانم آب آبم دیز عین همچو عینین نبی حتی لتن. او چو آب دیده جست از جود حق با چنان اقبال و اجلال و سبق چون نباشم زشک خون باری کریس منتحی دست قصور کاسلیس. چون چنان چشم اشک را مفتون بود، اشک من باید که صد جیهون بود. قطره زان زیند صد جیهون بهست که بدان یک قطره انس و جن برست. چون که باران جوست، آن روزه بهشت چون نجوید آب شور خاک زشت ای اخی دست از دعا کردن مدار با اجابت یارد اویت چه کار نان که صد و مانع این آب بود دست از آن نان می باید شست زود خیش را موزون و چست و سخته کن زاب دیده نان خود را پخته کن آواز دادن حاطف مرد طالب گنج را و اعلام کردن از حقیقت اسرار آن ان در این بودو که الهام آمدش کشف شد این مشکلات از ایزدش کو بگفتد در کمان تیره به بنه کی بگفتندت که اندر کش تو زه او نگفتد که کمان را سخت کش در کمان نه گفت او نه پر کنش از فزولی تو کمان افراشتی صنعت قواسی برداشتی ترک این سخت کمانی رو بگو در کمان نهتی رو پرریدن مجو چون بیفتد برکن آنجا می طلب زور و بزاری جو زهب آنچه حق هست اقرب از حبل الورید تو فکنده تیر فکرت را بعید ای کمان و تیرها برساخته سعید نزدیکو تو دور انداخته هرکه دور اندازتر او دورتر و از چنین گنج است او محجورتر فلسفی خود ز اندیشه بکشت. گو بدو، کوراست سوی گنج پشت. گو بدو، چندان که افزون میدود، از مراد دل جداتر میشود. جاهد و فینا بگفت، آن شهریار. جاهد و انا نگفت، ای بیقرار. همچو کن آن، کوز ننگ نو رفت بر فراز قله آن کوه زفت. هرچه تر همی جست او خلاص سوی کوه میشد شد جداتر از مناس. همچو این دربیش بهر گنجکان هر صبح سخت تر جستی هر کمان. کمانی که گرفتی سخت تر بود از گنج و نشان بدبخت تر این مسئل اندر زمانه جانی است جان نادانان برنج ارزانی است زان که جاهل ننگ دارد زوستاد لاجرم رفت و دکان نو گشاد آن دکان بالای استاد اینگار گنده و پرگژدم استو پر زمار زود ویران کن دکان و بازگرد سوی سبزه و گلبنان و آب خورد نه چو کن آن کوز کبر و ناشناخت، از که آسم سفینه فوز ساخت. علم تیراندازیش آمد حجیب، وان مراد او را بوده حاضر به جیب. ای بسا علم و زکابات و فتن، گشت ره را چو را و راه زن. بیشتر اصحاب جنت ابله هند، تاز شر فیلسوفی میره هند. خیش را آریان کن از فضل و فضول، تا کند رحمت به تو هردم نزول. زیرکی شکست شکستست و نیاز، زیرکی بگذار و با گولی بساز، زیرکی دان دام برد و تم و کاز، تا چه خواهد زیرکی را پاک باز؟ زیرکان با صنعت قانع شده، ابلهان از سان در سانع شده، زان طفل خرد را مادر نهار دست و پا باشد، نهاده بر کنار حکایت آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود که به منزل قوت یافتند و ترسا و جهود سیر بودند گفتند این قوت را فردا خوریم مسلمان سایم بود گرس نماند از آنکه مغلوب بود یک حکایت بشنوینجا جا ای پسر تا نگردی ممتحن اندر هنر آن جهود و مؤمن و ترسا مگر همراهی کردند با هم در سفر با دو گمره همراه آمد معمنه چون خرد با نفس و با آهرمنه مرغزی و راضی افتند از سفر هم و هم صفره پیش هم دگر در قفص افتند زاغ و جغد و باز جفت شد در حبس پاک و بینماز کرده منزل شب به یک کاروانسرا اهل شرق و اهل غرب و ماورا مانده در کاروانسرا خرد و شگرف، روزها با هم ز سرماو و ز برف، چون گشاده شد ره و بکشاد بند، بکسلند و هر یکی جای روند، چون قفص را بشکند شاه خرد، جمع مرغان هر یکی سوی پرد، پرگوشاید پیش از این پرشوق و باد در هوای جنس خود سوی معاد پرگوشاید هر دم با اشک و آه لیک پریدن پر ندارد روی راه راه شد هر یک پرد مانند باد سوی آن کاز از یاد آن پر می گشاد آن طرف که بود عشق و آه او چون که فرصت یافت باشد راه او در تن خود بنگر این اجزای تن از کجاها گرد آمد در بدن آبی و خاکی و بادی واتشی عرشی و فرشی و رومیو و کشی از امید عاد هر یک بسته ترف اندر این کاروانسرا از بیم برف برف گوناگون جمود هر جماد در شتای بود آن خوشید داد چون بتابد تف آن خوشید خشم کوه گردد گاه ریگ و گاه پشم در گداز آید جمادات گران چون گداز تن به وقت نقل جان چون رسیدند این سه همره منزله هدیشان آورد حلوا مقبله برد حلوا پیش آن هر سه غریب محسن از مطبخ انی قریب نان گرمو سحن حلوای اصل برد آنکه در ثوابش بود عمل القیاسه والادب لهل المدر الضیافه والقرا لهل الوبر الضیافه للغریب والقرا آود الرحمنو فی اهل قرا، كل یوم في القرا زایف حديث ما له الاله من مغیس، كل ليل فی القرا وفد جدید، ما لهم سما سوالله مجيد، تخم بودند. آن دو بیگانه زخور بود سایم روز آن مؤمن مگر چون نماز شام آن حلوا رسید بود مؤمن مانده در جوع شدید آن دو کس گفتند ما از خور پریم امشبش بنهی ما فردایش خوریم صبر گیریم امشب از خور تنزنیم، زنیم بهر فردا لوت را پنهان کنیم گفت معمن امشبین خورده شود صبر را بنهیم تا فردا بود پس به دو گفتند زین حکمتگری قصد تو آن است تا تنها خوری گفت ای یاران نکه ما سه تنیم چون خلاف افتاد تا قسمت کنیم. هر که خواهد قسم خود بر جان زند. هر که خواهد قسم خود پنهان کند. آن دو گفتندش ز قسمت درگذر. گوش کن قسام و فنار از خبر. گفت قسام آن بود کو خیش را کرد قسمت بر هوا و بر خدا ملک حق و جمله قسم اوستی قسم دیگر را دهی دوگوستی این اصد غالب شدی هم بر سگان گر نبودی نوبت آن بدرگان قصدشان آن کن مسلمان غم خورد. شب برو در بینوایی بگذرد. بود مغلوب او به تسلیم و رضا گفت سمعا طاعتا از بنا. پس بخفتند آن شب و برخواستند بام دادان خیش را آراستند. روی شستند و دهان و هر یکی داشت اندر ورد راه و مسلکه. یک زمان هر کس آورد رو سوی ورد خیش از حق فضل جو. مؤمن و ترسا جهود و گبر و موغ جمله را رو سوی انسلطان اولاغ. بلکه سنگ و خاک و کوه و آب را هست واگشت نهانی با خدا این سخن پایان ندارد هر سه یار رو به هم کردند آندم یاروار آن یکی گفتا که هر یک خواب خیش آن چه دید او دوش گو آور به پیش. هر که خوابش بهتر این را او خورد قسم هر مفضول را افضل برد، آنکه که اندر عقل بالاتر رود، خوردن او خوردن جمله بود، فاق آمد جان پرانوار او، باقیان را بس بود تیمار او، آقلان را چون بقا آمد ابد، پس به معنا این جهان باقی بود، پس جهود آورد آنچه دیده بود. تا کجا شب روح او گردیده بود. گفت در ره ام آمد پیش گربه بیند دنبه اندر خواب خیش. در پای موسا شدم تا کوه تور. هر سمان گشتیم ناپیدا ز نور. هر سایه محو شد زان آفتاب بعد از آن زان نور شد یک فتح باب نور دیگر از دل آن نور رست پس ترقی جست آنسانیش چست هم من و هم موسی و هم کوه تور هرسه گم گشتیم زان اشراق نور بعد از آن دیدم که کوه سه شاخ شد چون که نور حق در او نفاخ شد وصف حیبت چون تجلی زد بر او از هم همی شد سو بسو. آن یکی شاخ کوه آمد سوی یم گشت شیرین آب تلخ همچوسم آن یکی شاخش فروشد شد در زمین چشمه دارو برون آمد معین که شفای جمله رنجوران شداب از همایونی وحی مستتاب آن یکی شاخ دگر پرید پر زود تا جوار کعبک عرفات بود باز از آن سعقه چو با خود آمدم تور برجا بود نه افزون و نه کم لیک زیر پای موسا یخ می گدازید او نماندش شاخ و شخ با زمین هموار شد که از نهیب گشت بالایش از آن حیبت نشیب باز با خود آمدم زان انتشار باز دیدم تور و موسا برقرار بان بیابان بان سر در زیل کوه پر خلایق شکل موسا در وجوه چون اصاب و خرقه او خرقشان جمله سوی تور خوش دامن کشان جمله کفها در دعا افراخته نغمه ارنی به هم در ساخته باز آن قشیان چو از من رفت زود صورت هر یک دگرگونم نمود انبیا بودند ایشان اهل وود اتحاد انبیایم فهم شد باز املاک همه دیدم شگرف صورت ایشان بود از اجرام برف خلقه دیگر ملائک مستعین صورت ایشان به جمله آتشین زین نسق می گفت آن شخص جهود بس جهود کاخرش محمود بود هیچ کافر را بخاری من گرید که مسلمان مردنش باشد امید چه خبرداری ز ختم عمر او که بگردانی از او یکباره رو بعد از آن ترسا درآمد در کلام که مسیح هم رو نمود اندر منام من شدم با او بچارم چارم آسمان مرکز و مسوای خورشید جهان خود عجبهای قلاع آسمان نسبتش نبود به آیات جهان هرکسی دانند ای فخرالبنین که فزون باشد فن چرخ از زمین